حکایت دو امیرزاده در مصر بودند، یکی علم آموخت و دیگر مال اندوخت، عاقبت الامر آن یکی علامه مصر گشت و این یکی عزیز مصر شد، پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کردی و گفتی من به سلطنت رسیدم و این همچنان در مسکنت بمونده است، گفت، ای برادر، شکر نعمت باری از اسمهو همچنان افزونتر است بر من که میراس پیغمبران یافتم، یعنی علم، و تو را میراس فرعون و هامان رسید، یعنی ملک مصر، منان مورم که در پایم بمارند، نزم بورم که از دستم بنارند، کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم